اینجا میدان یک مقدار علمی میشه و وسیع میشه. بعد از ما میاییم علف الله رو بست میدیم. میشود ا به اضافه لف لف لام میشود سی ف میشود 80 میشه 110 میشه علی. یعنی همان گونه که اگر الله بدون لف که او باشد ظهور و بروزی ندارد ذات خداوند متعال هم اگر میخواد ظهور و بروزی پیدا کند و خودش رو نشون بدد و معرفی کند بدون علی شناخته نمیشوند و ظهوری ندارد و بروزی ندارد به قول اون عارف که در شعر میگوید دل گفت مرا علم لدونی حوس است تعلیمم کن گر که تو را دست رس است گفتم که الف گفت دیگر هیچ مگوй در خانه اگر کس است یک حرف بس هست شو شاعر نبودم عارف بودم ولی خب خیلی از اسرار زیادی رو در این شعری که گفتم اونجودن رو بیان کردم بعد میایم لام الله رو بست می دیم. یه الف توی لام است یک میم بعد الف است که میشود چی؟ لام یعنی یک عم اینجا بیانه ی لی رو قرار میده لام دوم دو هم همینطور فلزا دو تا الف و میم دو الله به ما میده میشه چی؟ امام یعنی دقیقا زیر الله نفت میشه صد و امام بحیه الله البته این در قانون علم های علم و حروف هست که گاهی بیانه رو به علف میگیرن مثل این که میخوایم بگیم ها یعنی ه گاهی میگونم هو یعنی ه گاهی میگونم هی یعنی ه یعنی به یکی از این سه حرف حرف رو بست میدن که میشد حرف دوم بیانه یا حرف همه و ما این جاهی بگیریم آی آخر الله یعنی بگیریم میشود علیان امامی که بیانه الله میشه و خود امامی 92 میشه و محمد میشه الله محمد محمد سلام که دقیقا, محمد محمد دقیقاً سلام. که سلام. دقیقا برگینه علی چی میدهد علی محمد میدهد پس وقتی الله که شست و شیش هست به اضافه علی که صد و ده هست میشوند صد و هفتاد و شیش به اضافه محمد که نود و دو هست می شود دویست و و هشت می مبارکه نیم چهل به دو چهل و دو علف و چهل و مبار بیست، چهل و کاف مبارکه 20 دویست و س... و سه، مبارکه 6 دو دخشید ها نه هی. خود هی میشود پنج عبجت همز هی رو رو پنجم پنج 268 پنج. پنج یعنی خود مبارکه میشود 268 که مطابقه این الله به اضافه بگیناتش یعنی به اضافه محمد و حدی باشه و عجیم این است که نام شبقد رو خدا مبارکه برده است. انا انزلنا و فی لیلت مبارکتن انا کنن و منظری سوری هاممدو خانست یعنی ما این قرآن را در شب مبارکه یعنی شب قدر ناظر کردیم و عجیبین این است که هم مبارکه اسم زهراست و هم لیلت القد میشه الفاطمت و زهرا و حدیث هم داریم که امام ساده فرمود لیلت القد فاطمه و شیعت و هم ملایکه فرمود لیلت القد فاطمه است و شیعان او هم ملایکه است یعنی اربایی که شیعه و نازل میشن بر بدن ها تا قیامت این ها خودشون یک صرفی هست ملاکه هستند که شیعیان زهره باشن و لیلت رو تاستن. و اگر این طور باشد پس باید قرآن یه وجود حقیقی